صل على فاطمه وابيها ومواليها وبنيها اصلم المستودع فيها بعد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد و محمد وعج فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم مواسيه طب المعصومين تو بحث الخلو پیشگیری و درمان با سرکه طبیعی از جمله سرکه انگور عسکری و سرکه سیب بعضی او مؤمنا ادعاشون خیلی زیاده یعنی رو از گیریم دراستر میکنن حالا یک کلمه یه چیزکی دونسته یا یاد گرفته هی میخواد پیشواز فرض کنه فرضی بافی کنه هی تعمین بده مثلا فهمیده سرکه طبیعی فواید زیاد داره حالا میخواد الا و بلا اوسته هر بیماری به کار ببره اوسته بعضی بیماری ها داره نباید بخوره ترشیجاد سرکه آبلیم و ترش گوجه سبز اوسته بعضی بیماری ها داره نباید بخوره مثلا اگر کسی یوبوسط مزمن داره برای زرر داره اگر کسی سر سوزش معده داره هارت بون براش zarar اگر کسی برگشت اسید معده به مری داره براش zarar داره و مانند اینها کسی که ضعف اعصاب متوسط و شدید داره براش zarar داره کسی که تپش قلبش بالاست آب لیمو ترش و امانی گوج سبز براش zarar داره کسی که فشار خونش زیر دهه این ترشیجات برای زره داره فشار خونش پایین میاد حالش بدتر کسی که مشکل پمپاژ قلب داره یا اختلال دریچهی قلب داره این آب لیمو ترش مونده این لیمو امانی برای زره داره نه بد بخور پس نیمتونی تعمیم بدی حالا اگر یکی دوتا فائده داشت مثلا ویتامین سه داشت مثلا یا چاشنی طبیع مناسب برای غذا بود یا اشتها آور فل بود یا بار زبون رو یه مقدار کم میکرد و التهابات رو کاهش میداد در گوارش این دلیل بلی نمیشه که همه جا تعمیم بدی حالا این بسید چی گفتن؟ به خاطر اینکه بعضی تو بعضی بیماری های خاص به کار و بسیار ضرر داره مثلا اگر کسی گرفتگی ماهیچه حلقوی در مری داشته باشه. حالا یا ژنتتیکن و و یا بلعرز به خاطر اینکه چیزای تند وتیز زیاد میخورده یا ریفلاکس شدید بوده برگشت اسید معش به مری شدید بوده. حالا اعضله انتهایی مری یا ضله ابتدایی مری قف کرد. یا غذا اصلا نمیره پایین، یه دومموشی مسیر وازه یه بار مسیر عادیه مثلا دو سانتیمه یه بار مسیر گشتتر شده بیماریه پنج سانتیم شده تو مری ها یه بار دیگه قفت کرده مایچه حلقوی ابتدای مری و یا انتهای مری قبل از ورود به معده. فقط یه مسیر خیلی باری که به اصطلاح علمی میگیم دومموشی حالا اینجا مؤمنات اگر بیای بچینید شخصی ترشیجات بندری یا لیت بدین یا فلفل و سس فلفل بدین یا مثلا سرکه بدین این همه روزا تعریف می‌کنی از سرکه این مریض که علتش بدتر میشه چون سرکه حالت انقباضی داره که انقباض بیشتر میشه گرفتی میگم ها حالت تخلیه سلولی داره رطوبت اضافی کم میکنه این خودش مشکل رطوبت داره تو این قسمت مشکل بلع داره بلعیدن قضا هم از حیث رطوبت و خلط نیاز مورد نیاز هم از حیث مایچه حلقوی چون های سالم مؤمنا ها وقتی که غذا می جوه ها به صورت اتوماتیک این مایچه از ازاله انتهای مری خود به خود شل میشه این غذایی که جوید قورت که میده رد میشه میره تو معده اما اگر کسایی بیماری آشا لازی فوزه کسانی که بیماری آشا لازی دارن یعنی اشکال در بلع غذا دارن در نتیجه اختلال ازولانی مری یعنی نارسایی اسفنگتر تحتانی مری یعنی اختلال انقبازی حلقه ازولانی انتهایی تحتانی مری دارن حالا اینجا مؤمنان این اسپینتر شلی طبیعی خود رو از دست داده و به قضا اجازه عبور به معده رو نمیدهد. مسیر بازش به اصطلاح مسیر بازش حالت دم مشی داره یعنی انقدر باریک که در پزشکی جدید سه تا درمان پیشنهاد شود. چه آمریکایی چه انگلیسی یک بالون زدن که در نیمی از افراد موفقیت آمیزه ولی در بعضی افراد از 6 ماه تا چندین سال متغیره یعنی دوباره باید بیاد بالون رو تکرار کن. که گاهی بالون با کیسه هواست گاهی بالون با کیسه مایع به صورت خالی میفرستن ابتدا اینجا و بعد بالون میزنن پمپ هوا یا پمپ مایه. بعد دوباره این تخلیه میکنن با خود بالون در تو از افراد موفق آمیزه تو بعضی هم از 6 ماه تا چندین سال متقیره باز باید بالون زدن دوباره تکرار بشه کار دومی که میکنن این خارجی اینه که بعضی داخلی هم تکرار میکنن. تزریق سم بوتولین بوتولین هم می تزریق سم بوتولین در این ماهیچه و اسفنکتر تحتانی مری که این ازاله خودشو شل کن که قضا راحتی تو معده بره اما چنین افرادی دیگه هرگز نمیتونن به پشت بخوابن یا دست راست و دست چپ بخوابن همیشه باید نیمه نشسته یا نشسته بخوابن گرفته همون چی میاد؟ چون قضا از معده برمیگرده به مری چون با این با بوتولین عضله انتهایی تحتانی مری چکار کرده؟ شل کرده این هم سوقات عمل دومش، کار دومش، کار سومشون چیه؟ جراحی اندوسکوپیکه که میان با جراحی یک شکافی به این ازوله میدن که مسیر گشدترش باز این مطلعه میشه به ریفلاکس دائمی باز دوباره باید دارو بدن که ریفلاکس دائمیش خوب بشه. مثلا این جلو رو همیشه بعد از غذا مصرف کن یه بار مصرف از جلو بعد از غذا مصرف کن این یکیش ها بعد. آیا می توان عاشالازی رو درمان کرد بدون این سه مطلب نوین از قلب بله میشه نمی‌شه. یادداشت بفرمایید. کسانی که گرفتگی به اصطلاح طب قدیم کسانی که گرفتگی سر دیگه معده دارن به اصطلاح قدیم کسانی که گرفتگی سر دیگه معده دارن به صلاح امروزی چی میگیم همو جام؟ آشالازی یعنی اسفنگتره ازولانیه تحتانی مری قف کرده و مسیر بسیار باریکی مسیر اصلیش به مقدار دو متر باز نمیشه بعضیا ها زایه دو برابر میشه یعنی تنگی ابتدایی و انتهایی مری و گشادی بین این دوتا از مری. از حالت طبیعی گشادی‌تر میشه مری. تو بعضی مریضا میشه 5 سانتی‌متر. گرفتین چی شد مؤمنان؟ خب. درمانش چیه؟ درمان آشالازی و درمان گرفتگی سر دیگ معده تخمه کرفس. تخمه کرفس رو کوبیده با شیره کنار با شیره کنار یک گیاه مخلوت کنه مصرف کنید گرفتگی سر دیگه معده خوب بشه. کسانی که مشکل ازاله ای دارن چه سفنگتر تحتانی مری چه سفنگتر ابتدایی مری که سفنگتر ابتدایی مری که شل میشه و قدرت بلیدن از دست میده بیشتر در آدمای های سکتهیه. اما اسفنگتر تحتانی بیشتر در آدمایی که استرس زیاد و جوش زیاد میزنند یا ریفلاکس شدید دارند یا رفتار منفی با خودشون دارن غذای داغ زیاد میخورند یا قضای تندوتی زیاد میخورن یا ترشیجات زیاد میخورن یا مبتلا هستن به دخانیات و مانند اینها اینها مبتلا به آشالازی میشن مشکلات ازول اسفنگتر علالش یک چاق بودن، چاقی مفرد چلبی بیام به بالا، پونزه 20 کیلو اضافه وزن به بالا و کم تحرکی. دو مثلا لاتا و نیم لاتا مثلا لاتا و نیم چلاتا هم به خاطر چی عموجون؟ مصرف مشروبات الکلی. مخصوصا اگر زیاده روی در مصرف مشروبات الکلی کنن مخصوصا در شب کریسمس در اروپای غربی و یا آمریکا که آخرین مقالات علمی در اروپای غربی میگه اکثر کودکان ناقص الخلقه که در اروپای غربی به دنیا میان نطفه در شب کریسمس بسته شده زیرا که می در اون شب رواج داره کهش کودکان اینجا دو بیماری آشالازی میشن این هم مصرف زیاد مشروبات الکری کمش هم حرامه زیادش هم حرام سوم بحثم دخانیات، از سیگار و پیپ و چپق و قلیون و از این حرفا خیلی عوارض دارم یکی از عوارض شیه مومن ها. تنگی عزاله اسفنگتر تحتانی مریه یعنی ایجاد بیماری آشالازیه خیلی عوارزدنان بیش از 35 سرطان میاره این حرفا خودش مقدمه سرطان مریم میشه اگر آشلازی ادامه پیدا کنه مقدمه سرطان مریم میشه چهارون خوردن قضاهای پرچر این چه قضای جلو هم گذاشتی چرا ته اشراق هم وای نستده ته بشقا و به قول نه این بوده یه شحله محله بذار شحله شحله و به قول برز یا این دیزی سنگی ها چرا دوم و ها و پیاش کنه. خب جان تو که تحرک نداری اضافه رزنم داری تو رو کار بر قضای چب حالا یکی از سب تا شب وردی میکنه باغداری داره پیادروی آرام داره روزی یک ساعت حالا یک قاشق پلو خوری چربی حیوانی بخوره تو بیس ساعت اشکال نداره اما تو که کم تحرکی زندگی ماشینی شهری داری حسنی چی میخوری چربی با ترانس بالا ی یا به شما از کنم سرطان کلان تو بحث روده بزرگ میگیری که قبلش هم سالها کلیت زخمی داشتی خودت خبر نشتی چون خون نامرئی در مدفوعت بوده و تو نرفتی آزمایش مدفوع بدی وقتی کار از کار میگذره مبتلا به سرطان کلان میشین اون وقت باید چرا اینجا قضاهای پرچرت بخوری اضافه از باشه و کم تحرکم باشه خب به دست خود به خود آسیب زدید. هم به روده بزرگ معمولا مخصوصا قسمت راست کلون راست. خب اینجا قبلش هم کلیت زخمی بوده این متوجه نبوده. الاب روده بزرگ به نوع زخمی بوده و خون نامرئی در مفورش بوده این زورش می که بره آزمایش مدفوع بده پیش متخصص علوم و آزمایشگاهی. کسانی که پیاز زیاد بخورن. و شکم گسته هم بخوام اینها هم دچار نرساییایی میشن در قسمت مری حساسیت هم میاره هر چیزی معتدلش خوب معامنا به زمینه. غذا های دار مخصوصا تیز و تون، زیاد بخورن که دیروز توضیحداد. شکلات قهوه کاکاو نسکفه این چیزایی که کافئین زیاد داره. خیلی بیماری ها میاره، لجن سفروی میاره، تبرم لوزه میاره، کمخونی فقر آهن میاره، مثل کاتالیزور های عمل کنه به نوع واکنش های احیایی. آهن بدن کم میشه، آهن اضافی بدن طریق ادراد درد میشه. به دست خودت خودت مبتلا مبتلاح میکنی به بیماری آنمی فقر آهن. حالا یکی دیگه هم مبایست خودمونه. کافه این زیاد که در شکلات کاکائو، قهوه نسکافه اینا هست یا چای پر چای مونده چای با آسانس چای احمد اینا چکار میکنه معام ها ؟ آشال لازیم میاره. قبل از این باز دو تا دیگه بیماری اللتهابی مری میاره. حالا ایناش میمونونه معاملا. یکی هم غذا ترش که مبایث خودمونه. اینا همه مقدمه بودن. خواستم بگم کسی سو استفاده نکنه از یک زاویه نخواد همه بیماری ها رو درمان کن مثلا حالا یه چیزی یاد گرفته از سرکه طبیعی انگور اسکری یا سرکه سیب حالا نخواد هر بیماری درمان کنه برای مثل بیماری آشالازی چیه؟ چون چیجا زرده چون مسیر تنگتر میشه تصالب فهمودی مهمن ها معده مهده بیشتر میشه یوبوسط مزمن شخص بیشتر میشه. و اگر ضعف حصابش شدید داشته باشه و استراب حالش بدتر میشه و اگر تپش قلب داشته باشه و مشکلات دریچهی قلب و ناراحتی قلبی داشته باشه آم مونده منده و لیمو امانی بخوره و گوجه سبز حالش بدتر میشه پس ببینیم مؤمنان مورد به مورد افراد فرق میکنن بیماری با بیماری فرق میکنه با یک چیز همه نمیشه کرد یه نکته بود خارج از کتاب خدمتون گفتم مثلا فرض کنید که مؤمنم یک کسی دندون درد داره تا برسه به دکتر متخصص جراح دندان و لثه این مسیر درد نکشه یا شب تا صبح درد نکشه یه بار باید پانسمان موقت کنی بخوای با کروم کووالت یا سرامیک و مانند او اون اپار کنید دندونت اون پانسمان موقت حالا پانسمانه موقعت زده در میتونی گل میخک دارویی گل میخک داروی داخل این سوراخ دندونت بسید یکی دو تا که بذاری مومنو در ساکت میشه شیش هفتشه مثلا به جایی هم فکت میشه فهم میکنی زبونت لکنت پیدا کرد حالا یه بار دیگه حاجقا این نیست یکم تو خونه میگردیم مثلا این سیر هست یک سیر رو برمیداری سیر فهم سه سناخته وامی مثلا اینه تو خونه سیر هست این سیر رو رنده میکنی بعد مخلوط با کره میکنی بذار جایی که دندونه درد میکنه یکم لسته تا میسو درد ساکت میشه ببین موارد فرق میکنه تو سبد قضایی خانوار چیچی بوده اونی که در دسته چی بوده مریض دردی که داره چه نوعه فهم بودیم؟ بله یه بار خون روش لسته داره تورم لسته داره آبسه داره اینجا محلول سرکه یا خود سرکه آقشته میکنی به پنبه میذاره دی اینا خون روش بند میان تورم میخوابه آبسه خوب میشه دیلی خواستم بگم کاربرد چی همو مثلا محلول سرکه موارد فرق میکنه اینم یه مثال دیگه همو بعضی بچه ها هستن قلنج های کچیک قلنج های شدید دارن مومن ها. هر پنگ دیگه بچه میگیره زور میزنه بعد حالت چهار دست پایی به خودش میگیره مقعدش بیرون زدگی رود آنال میشه دستاشم هم سیخ میکنه پاهاش هم سیخ میکنه یه مقدار انحراف پیدا هر 5 دیگه اینجور قلنج میشه اینجا چیکار باید خیلی آسون یک کف پای بچه رو یکم قلقلک بده حالت انقباضاتی شدید یا انقباضی شدید چی میشه خوب میشه با تحریک عصب کف پا که از درد کاهش پیدا کنه همین به این آسونی اگر انجام ندیو حالا بعد ضد دردای قوی بده به این بچه مثلا دیاسپان بده پیروسکام بده تیکلوفناک بدید پس چیکار کن عصب کف پا رو تحریک کن حالت انبساطی شدید یا انقباضی شدید ول می‌کنه با تحریک عصب انشابات آکسانی. بعد باید این بچه رو تقویت کنی از حیث تقویت اعصاب و درمان کنی سوء تغذیه رو با عسل رقیق شده با آب سیب با عسل یواش یواش اگر شیرخوارا مادر این بچه رو باید تقریت کنه علاوه بر سه وعده غذا سه وعده میان وعده غذایی تا پنج وعده میان وعده غذایی هم باید این مادر بخوره تا بچه بدنش رو قوام برای بیرون زدگی مقعدی و همچنین برای اصلال قدیمی ها می گفتن پیزیش بیرون زده. و برای درمان بواسیر بادیش شیره انگور و یا انگور با هستش ن ک بین این بچه بدی بخوره بواسیر بادی و بیرون زدگی مقعدیش خوب میشه. خواستم موارد بگم این یک کلمه چون بعضی بچه هاره میارم مثلتون توضیح دارمن. عجبو بله رفتم پیش متخصص گوارش یا فوق تخصص کبد دیدم میگه که شما این بیماری سندروم روده تحریک پذیر سندروم روده تحریک پذیر مریض دو جوره یا همیشه یبوست داره یا همیشه شکم روش حالا اگر همیشه شکم روش داره داروش چیه خوردن سنجر سندروم روده تحریک بزیرش خوب میشه نمید دیگاری گفتم بیگه داروی میشه عکسش هم هست عکسش باید اسپاسم عصبی روده رو باز کنید. با گل رعی که چای کوهیه اگر با یه لیمان آب بخورا اسپاسم عصبی روده مثل کلیک روده چجور خوب میشه در سندروم روده تحریک بزیر که به نوع یوبوسطه اونم خوب میشه دیدیم اومن ها مورد به مورد بیمار فرق میکنه این هم یه توضیح خواهج از کتاب مقدمه مبایسته امروز ها چرا اگر کسی درد مفاصل داره و جز به افرادیه که کلسترول بدش بالاست یا تریگلیسیدش بالاست یا تجمع پروتئین در مفصل شده بعد از این که مشابه دکترها شده خب بعدم عکس هم گرفتن، میگن یک کلاف سردرگمه از چربی تو مفصدت خب پزشکی جدید چی میگه؟ عمو میگه جررایی از بالاتر از زانو میشکافه تا پایین تر از زانو به ترتیب قوس پا بعد این پروتئین چربی رو از تو در درمیان درد ساکر میشه. این پزشکی جدید حال حالا حالا بخوایم این پروتئین پروتین خب و این کلسترول بدش رو تو خونش هر داره بیاریم پایین اشیاءنا بله رژیم آب درمانی توأم با حسب تانس چربی بالا و مصرف آب اون 8 لیوان که گفتم اون 4 لیوان آب 4 لیوان آب لیمو بشم و در یکی از این لیوان ها یا دو تا از این لیوان ها هر کدام دو قاشق چایخوری سرکه طبیعی سیب بریزه هم کلسترول بعدش میاد پایین هم در طول زمان سر سردرگم چربی تو مفصل ادای میره بدون اینکه آسیب برسه به قوزروف مفصلی، بدون اینکه آسیب برسه به دیسکا کشکک زانو بدون اینکه آسیب برسه به استخونهای استنجی سر استخوان ران و سر استخوان پا خب بله گاهی درد مفصل به خاطر کمبود مایه مفصلیه که صدا میده خب اونجا گفتیم که 14 عدد مغز بادوم شیرین مؤمنان یکی هم یک لیمو شیرین شبا بخوره اینه قبلا گفتیم چرا چون افت مایه مفصلیش به خاطر کمبود ویتامین B1 مگر اینکه اینجا در رفتگی دیسک داشته باشه نشری مایه مفسدی داشته باشه تصادف کرده از جایی سقوط کرده شکستگی زانو پیش اومده او یه چیز دیگه اینه اینکه پس کن نشری پمپ روغن هست مؤمنان از تو قسمت موتور حالا این باید بری روغن موتور بزید خب برو اون پیچ هرزشی درست کن. یعنی اینکه مثلا نشری روغن ترماز خب برو اون پولکی ها عوض. یه ترمازد که خراب نیست. اون پولکی شما منا و شیلنگ شما عوض کنید حالا اینجا باید ببینی آسیب به چه علت بوده از اون حیث باید درمان کنید این رو سه چی توضیح دارن؟ بخواهم بگم اگر مثلا کسی آرتروز پیش رفته داره شما نمیتونید با سرکه طبیعی دعمان کنید شما استحکام استخوان میتونید بگید از حیث تلاکم استلوله استخونید اما نمیتونی آرتروزش دعم اصس سایدیه مصصل سای. جلوی پیشرفت بیماری شما میتونه بگیری با کلسیم دی ایرانی یا کلسیم قزوپ آمریکایی یا با پودر سنجد با شیر میتونی جلوی پیشرفت آرتروز بگیری اما نمیتونی زایع اراتیکال کنیم درمان کنی حالا موارد دیگه ای هست پس باید مدیریت برخشتن داشته باشی رفتارت با خودت مثبت باشه بار سنگین ور نداری پیاده روی طولانی نکنی کوه نوردی نکنی کول پشتید بیشتر از 20 کیلو نباشه در کودکان 15 سال بیشتر از 15 کیلو نباشه تو سطح شیبدار غالبا حرکت نکنی تو سطح مستوی باشه تایه کفشت هم خوش نباشه مثل دنپای ابری هم خیلی نم نباشه همجور تا 16 مطلب تو بحثم آناتومی حرکت سعید و اینا رو باید بیشتر رعایت کنین نشستن چجوره باشه دو زانو نباشه چهار زانو نباشه باید متقیر باشه حالت تروت باشه یا سبک خاستی که پیغمبر میشستان دستاشونه به زانو میگرفتن متاسف بودیم تروت باشه یا این حالت باشه همین باید حالت عوض کنیم هنوز ادامه داره این هم یه حاشیه‌ای بود که بر فرمایش این دکترای خارجی زدن یکم ستون گفت پس اگر کسی درد مفاصل داشت، باید حتی المقدور وزن اضافیش هم کم کنه. درست شد چرا؟ چون هر کیلو اضافه وزن، ده کیلو فشار اضافی به مفصل میاد. پس باید اضافه وزن چیکار کنه؟ همجرون کم کنه. تو تخصصی ارتوپلی، تخصصی مفاصل. و برای اینکه حرکات کافی داشته باشی، هم اضافه وزن رو کم میکنیم مومن هم بهترین ورزش ها رو انجام میدیم. گل سرسبد این ورزش ها شنا کردن در عمقه کم آبه. بعد از او روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد خوش خسته نکنه. نیم ساعت یک ساعت زیادم است. بعد بعضی مسائل است مثل آرتروزش پیش است. یا نراحتی قلبش زیاده. یا عمل باز قلب کرده. این پای دی غبارات باشه بعدا باید استراحت کنه پله نود بالا پایین بره نردون بالا پایین بره پیاده روی طولانی نود کنه ولو در سطح مستوی دیدی مؤمنا مریض با مریض مؤمنا فرق میکنه پس تو بهترین راه همین چیه جون که از مفاصلت محافظت کنی از باب پیشگیری طبیعی قبل از اینکه مبتلا به بیماری های مفصل بشی از خشکی مفصدی، از کمبود مایه مفصدی، از تجمع پروتئین در مفصل، از آرتروز سایدیگی مفصدی، همجور برود تا دهت بیماری. اینجا پیاده روی آرام در سطح مستوی، در هوای آزاد، توی جیره حرکت درمانی تو روز باشه، تو شب باشه. که برای مدت هم خوبه. مثلا شامت زود بخور، بعد از شام یه مقدار را برو. تو تا قدم بزن، تو سالون قدم بزن، تو حیات قدم بزن بلا فاصله بعد از شامفردن لم نده ذریب سرسوزه معده و ریفلاکسیت بیشتر میشه ذریب باکتری های موزر گندیده توی روده بیشتر میشه آراغت بد بود دشتی بزرگت بد بود فضای حلق و بد بود پوست بدن بد بو، عرقم بد بود این به خاطر چی بود اما تنپروره لم میده میلمبونه میخوابه را نمیره این هم اصطلاحات عامیانه مردم بود که میگن خستگیتون در پس اینجا اتعشه و اتمشه بعد از شام راه برو ازا تو روایات میگه حداقل هفت قدم راه برو یادم هر چیم هم تنبل باشه یا بابا جو هفت قدم راه برو میتونید چارگوش اتاق چهار تا صندلی بزنید از این صندلی پاشو برو رو صندلی بشه. یه کم استراحت کن بعد دوباره برو رو صندلی بشین تو کل 24 ساعت لااقل نیم ساعت راه برو خیلی فواید داره مؤمنات تا هم بودیم؟ یکی هم محافظت از مفاصله خشکی مفصل نمیگیرید تجمع پروتئین در مفصل نمیگیرید و بقیه متاله خود تنبلی کمکاری عدم تحرک یکی از عواملی که پوکی استخوان میاره یا بیماری استوپوراس نزیر خوردن اوسانسای شیمیایی که معنی جذب و فسفر میشه بیماری استوپوراس یا پوکی استخوان میاره یا نزیر کسی که ویتامین C زیاد مصرف میکنه و خود درمانی قلدر شکایت میکنه اون؟ اجبار حجرا خوشمزه است از این قرصای ویتامین سه شیمیایی که می‌ندازم تو آب جوشش میکنه جگر هم حال میاد میخواد حالا کسی که خود درمانی غلط میکنه قرص ویتامین C رو از خودش میکنه خب کسط ویتامین در بدن که ذخیره نمیشه دفع میشه اما عوارض سوء داره یک آرزوی سوءش چیه پوکی استخوان بیماری استئوپروز یکی دیگه, دیگه از عوارضش چیه سنگ کلیه میره بفرمایید تو تبعیش هم همینه مثلا یه چیزی مفت باشه. باید پرخوری کنیم مثلا سه کیلو پرتقال باشه. چنگ می‌ذارم 5 تا پرتقال. گیری فرود باشه. 3 تا گیری فرود می‌خوام. اینجا هم نارنگی باشه. 6 تا میشک نمی‌خوام. اینجا هم نارنج باشه. 2 تا 3 تا رو کبابش میز. بابا جون درست مفته. اما وقتی زیاد ویتامین C بخوری ولو طبیعی همونی میشه که گفتیم. ویتامین C نداری. مانع جذب کارسیان پاسفار میشه پوکی اصطقا میگه و از سنگ کلی هم بگیری کی به خودش ظلم کرد کسی که زیاد روی در مصرف کرد یعنی مصرفش به جا به موقع به مقدار لازم نبود به دست خودش به خودش آسیب زد. اینم تا اینجا کسانی که کف پاشون بو میگیره جرابشون بو میگیره داری انگشتای پاشون یا کف پاشون خارچی میشه یا پوست پوسته میشه یا سوزش ناشی از عرق زیاد داره همین رو میشه چکار کرد همون میشه با محلول آب سرکه یا سرکه خالص یک با بقیه وقتا با محلول آب سرکه چطور حالا یا آفونی میکنن با زدعفونی های شیمیه مختلف حتی تو دیابتی ها مثلا محلول ساولان حالا شما میتونی با محلول رقیق شده یه سرکه چیکار کنیم اومنا؟ کف پا لایه انگشتا اینها رو بشوری جرابات هم تو محلول آب سرکه بشوری بوی کف پا کم میشه عبه میره لایه انگشتا اینا دیگه قارچی نمیشه پوسته پوسته بشه انواع گندیدگی های پوست و بافت ازاله و سپس بافت استخوان پیش نمیاد این هم مؤمن ها مالی های اندام میانی بدن از افونت های ادراری یا چسبندگی ابتدای یا افونت های دستگاه تناسالی هم میشه با هفته یک بار دو بار یا سه بار و امانندو این بستگی داره به پیش رفته افونت ادراری میتونی همچنین استفاده کنی از پوماد چشمی یک در سر تتراسیکلین ابتدائم بزنی نکه آلت شخص تا افونت ابتدای مجرح از بین بره و ادرار شخص راحتی بیاد عفونت ادراری به توسط رفلکس ادرار نرزنه به حال به مسانه به کلیه مسیر باز باشه و نمک سمی خون آمونیاک خون اوره خون اینا دفت بشه ذریب مسمومیت در بدن بالا نره به پوسیدگی داخلی هشلو به کلیه کالیس کلیان کلیه قسمت فوقانیش گلومورول های هشلو به کلیه شروع به پوسیده شدن نکنن و شخص محتاج به دیالیز نشه حالا در هفته یک بار دوبار سه بار بستگی به پیشرفت بیماری داره اینجا تو محلول آب سرکه بیس دقیقه بیشینه آب لگن حموم تمیز می‌شوریم تا نصف آب میکنیم یه استکان سرکه میریزی توش چه سرکه سیب چه سرکه انگور عسکری چه سرکه سفید می‌ریزید توش یه همش میزنیم پنج دقیقه الی 20 دقیقه تو این محلول مریض بشین تمام اونا رو به بهبودی حالا تو ها هم میتونه مثلا اگر بیماری سوزاک داره میتونه رژیم آب انگور یک هفته هر روز یک لیوان آب انگور تازه اصرونه بخوره. بیماری سوزا خوب میشه. دکتر محمد صادر روشخان استاد دانشگاه تهران کتاب نیوه درمانی. بعد چیزهای دیگه هم مومن هست. تصاحب فهم بودید؟ تو بحث بیماری های زنان قارچک شال ایران و بیماری سفیدک و تعفون ترشوه مایات اضافی محبل و گوی تو قاعدگیاشون ترشحات اضافی محبلی دارم برای پاشویه با سرکیستیم سیب پشمیه گرم بپوشید پاها را با دستمال آغشته به سرکه سیب, سیب قبل توصیه های قبل ببندید کسانی که درد گلو و گلو آفونت عفونت لوزه لازا، تورم لوزه سوم یا آبسه یا ترم پشت زبانک دارن کرفتگی سینوس دارن کیپ بینی دارن میتونن با قرغره کردن محلول آبسرکی که مو موامنا چکا برن؟ اینا رو همه رو عبین ببرن و افونت های لغزه جانبی رو بکشن بیرون برم از دنش میزه بیرون اما این افونت ها رو اگر قرط بده از جدار معده و بعضی از جدار انتهایی روده کوچیک جذب دستگاه گردش خون بشه. مبتلا به روماتیسم قلبی میشه حالا پیشگیری از روماتیسم قلبی و از بین بردن عفونت های باکتریایی و بعضا قارچیه تو فضای دهان و حلق و پشت زبانک را با محلول آب سرکه میتونیم اب بین ببرید بدون اینکه چک چه خوشکن مثلا اگر گلوداد چند روز طول بکشه و با این شویه یعنی با این محلول آب سرکه افاقه نکرد حتما اینجا باید دکتر متخصص گوش و حلق و بینی یا فوق تخصص حنجره مراجعه کنه شاید بیماری های زمینی دیگر باشه که ما شما از او خبر نداریم ما ظاهرش دیدیم تو آینه که با نوک قاشق زبون داریم پایین حالا تورم پشت زبانک تورم لوزه مثلا اینا رو دیدیم شاید چیزای دیگه باشه که منو شما خبر نداریم مثلا چی عمو مثلا اگر زره ای از غذا مثلا یه دونه ماش یه دونه برنج، یه دونه هسته تخمه هندوانه سفیده ریزه یه نرما استخون نمیدونم آرد نخود خورده بچه بد خندیده یا سرفه کرد حالا اینا چسبیده پشت لوزش بیشتر کسانی که لوزه متورم دارن ولی عفونی ندارن لوزه متورم دارن مثلا نارنگی زیاد میخوره مثلا شکلات زیاد میخوره لوزه ها ورم میکنه اینو باد کنه. اینها این قالبا پشت لوزه هاشون نرمه قضا میمونه و صرفه های خشک مکرر دارن نه سرما خورده نه زکام نه آنفلانزاز نه آنژین گلو نه عفونت لوزه نه لوزه سوم. نه باید بینا چرک خشکان بدی آفونت نداره بزار میگم پیش یک متخصص ایک گوش و حلق و بینی یا فوق تخصص حنجره میری؟ یه عکسی از این قسمت میگیره مؤمنا دایی از همین ذراتی که گفتم پوسته دوازه همین ذراتی که در میاره مؤمنا یا قدیمی ها با فوت خاصی در میار وردن مومن ها. خوشک می آوردن مؤمنا صفای خوش که مکبرش قطع میشه پس اگر گلوده چند روز طول کشیده ممکن است مشکلاتی چون التهاب روده باز با ببینیم منشه التهابش چیه آیا ریفلاکس داره؟ فرگشت اصیر معده داره؟ آیا چیزای تند می‌خوره؟ تیز میخوره؟ آیا ترشیجاد میخوره؟ آیا التهابش به خاطر خشکی ابتدای مری و نایه؟ رتوبت مخاطش کمه؟ مشکل کمبود مخاطی رتوبتش چیه؟ آیا محیط سرد و خشکه؟ محیط گرم و خشک؟ یا رفتار شخص با خودش منفیه؟ پشت پنجره میخوره؟ پشت در میخوره؟ از این مهمانند ا این متخصص متعهد گوش حلق و بینی یا این فوقت تخصص حنجره باید همین رو چک کنه ببینه بیماری زمینهی هست یا نه رفتارهای شخص با خودش منفی هست یا نه علتهای اصلیشی که پیدا کرد و درمان سریع انجام میشه این هم یا ها یه علامتی زنیم توضیح داده و از یه مومن جوش صورت میگیرن که از یا از جوانی شدیده یا از التعابات شدید که میوه و سبزیجات یا کاهو بدون سس نمیخوره حالا جوشش صورت یا جوش بدنش مهمنا چی زیاد میشه در از نه جوش بدنشون زیاد میشه به خاطر بوده املاح بدنه از حیث ورلاقی سطح و و زدایندگی از چربی اضافی و دوده و گرد و محلول آبسه که با دستمال لطیف روش بکشید ایا کامپرست کنی وسردا آدم اگر داشته باشه که ناشی از گرم مزاجی باشه یعنی متابولیسم بازالش بالا باشه هر دو تاش خوب بشه. اگر جوش صورتش ناشی از فقر املاح معدنی باشه حالا میتونه تو جیره غذاییش که نمک دریا باشه ولی ضد عفونی شده و همچنین تو جیره غذاییش محلول آب سرکه باشه یعنی دو قاشق چای خوری سرکه ی سیب در یه لیوان آب هم بزنه بخوره این جوش صورت خوب میشه جوش صورت اغلب به دلیل کم بود و یا نرسیدن مواد معدنی به وجود می آید به همین خاطر سرکه سیب در اینجا قالبن یک داروی ایدئال طبیعیست بنابراین برای پخت و پز از نمک دریایی که به اندازه کافی مواد معدنی دارد اضافه کنید برمه خاشه یه حرف خارجی آقای پروفیسور مارگوت هلمیست حرفت خوبه اما تمام نیست و دو چیز دیگه اینجا بگه یک این نمک دریا تقریبا نمد انصار داره یک نمک کامل دوم این نمک دریا باید بهداشتی باشه یعنی میکروب کشی و زدعفونی شده باشه حالا این نمک های دریا که تو بازار هست این وری ور قالبا ور. زدعفونی نیست تو بسته های شکیل هست یا فلی اما ضد زدعفونی نیست نظام خودش ایجاد باکتری های موزه و همچنین تولید قارچ میکنه پس باید عفونی باشه هم یک کلمه یکی دیگهش هم چی بود امون؟ دارای 90 آنصره بین 70 تا 90 آنصر حالا دریا ها فرق میکنن ذریبه املاحش هم با هم فرق کنند شور و شیرین گردش داره نداره محیط بسته است نیست دریاچه دریاس اقیانوسه حالا اینا باید بحث کن کوه های اطراف ساحل چه نوع کوه های حالا اینا باشه کسانی که صداشون گرفته میتونن با محلول آبسه که صداشون رو باز اگر ناشی از پرحرفی حرفی باشه و آمدنه در هوای سرک باشه اینجا با حلیله بادوم حلیله بادوم اگر توعه با جیغ زدن هم باشه که صداش گرفته اینجا مومن دم کرده بهدانه هسته به اینا یک کاشا چای خوری یا مربخوری میزی تو استکان روش آب دوش برید 5 دقیقه ده دقیقه دقی دقی صبر کن همش بزن آب و دونه ها رو همه رو با هم قورت بده قرقره کن، قُرص بده. اینجا سینت نرم میشه، گلیل نرم میشه، صفای خشکت قطع میشه. دیگه نمیخواد حروف الف باره همه رو با ته حلق واحد میکنه صحبت کنی. اگر کسی مثلا اینا خارج از کتاب حاشیه‌ها و کتاب اگر کسی مثلا فرض کنید بیماری خروسک داره، سرماخوردگی شدید و تب بالا. حالا صداش شده مثل خروصی که تازه این جوجه میخواد ققلی ققل قوغل کنه. این صداش چجوریه؟ به اسطلاح تخصصی میگم بیماری خروسک قوی ترین دارو نرم سینه و درمان بیماری خروسک که از این شربت های اسپکتران تو صده احتقان و ماننده اینا بینیاز بشه نخود رسیده همین نخود های شلده است یا آب گوش مماننده نخود رسیده که نخود زرده یه مشفه میداری میزی تو قابلمه از شب تا صبح میخست صبح دوباره یکم دیگه روش آب ب اگر میخوایی نفخشی کم نگیری آب شب بریز بیرون بعد دوباره آب بریز بذاره بخسته بعد بذاره یکی دو ساعت به جوشه تو شعله کم بعد آبشه صاف کن بیمزهست قرغره کن قورت بده اگر فشاقون نداری میتونی یکم نمک اضافه کن اگر فشاقون داری یکم عسل قاتیش کن حالا قرغره کن قورت بده بیماری صدا، خروسکت خوب میشه خشونت خوب میشه. سختی و زمختی سینت خوب میشه صدا سینه همه اینا لطیف میشه عدار حروف راحتی میشه گاهی گرفتگی صدا به خاطر فشار هوای محیطه که تغییر کرده مثلا جمعیت زیاد محیط کوچک این همه جمعیت عزادار امام حسین علی سلام تحمل نمیکنه محیط خیلی کوچیکی مثلا دارم مثال میزنم حسینیه یا مسجد مثلا یا خیمه خب اینجا تغییر فشار اینجا مثلا کلرگازی گازی روشن باشه هوا به طرف سقف هواکش هم روشن باشه حالا بخار اضافی دی اکسید کربن اضافی سه اود این همه چی میشه عمو جو تخلیه بعد هوای تمیز جایگازین گرفتین معاملات چی شاد گرفتگی صدا هیچ کدومشون نمیگه جایی گرفتگی صدا به خاطر رفتار منفی با خودش یعنی چی یعنی درس داده سخنرانی کرده قاری قرآن بوده مداد اعله بوده معلم کلاس استاد دانشگاه هر بزرگواری کرد اصلا پدر خونه این سایل یک سایل سه زنبست چش مشاوره روانی و مشاوره رفتاری و مشاوره تربیتی گفت. حالا بعد از این همه سوه نباید مثلا چای شیرین بخوری یا چای با قند بخوری. این اولین خطا. نباید نشاسته با شیکرن یا نشاسته با قند بخوری که بعضی همچی اشتباهی دار. نباید بعدش زلوبیا یا خورما بخوری. نباید بعدش تعدیق بخوری، ژله بخوری. که خامه ای از اینا که میارن چون اینا ها مجلس های مردم ها من تکرار میکنم نباید بعدش مومن ها کنم موز بخوری اینجا مومن تا چندین روز از چند روز تا ده روز صداد میگیره صداد خش پیدا میکنه حروف ال باره همه رو با تای حل میکن زود خسته میشه اینجا تا 20 دقیقه بعد از صحبتی که کرد یا نباید شنین اینجات بخوری تا دقیقه میتونی آبجوش ولرم بخوری، میتونی آبش آشامیدنی سالم سرد عادی. سرد تگری نباشیم. میتونی بخوریم. میتونی شیر تازه کمچرب ولرم بخوریم. باشه اونایی که گفتم بیارتون باشم. مثلا اگر مثلا کاکاو بیار. اسکافه بیار. واسه حلچقا. واسه ماده، واسه آقای دکتر. واسه استاد دانشگاه ما علم. تفلگ بنده خود. اسکافه خوردن همون و پیچگی جگ زدن همون. چرا؟ چون وقتی دست داده مؤمنان قندخونش افت کرده. بعد تو کافئین زیاد بهش میدیم. که کمخونی فقر هم بگیره به نوع باکنش احیایی. سرگیجهش بیشتر و بعد لوزه میشه بنده خدا. بعد کم کم دردهای زیر دنده راست میگیره. که لجن صفرویه. وجدانه. این معلم و استاد دانشگاه تو یه آقا جانت اینا رو تحویل نگرفتی اینجا جاهلانه یا قافلانه عمل کردی زریب و آسیب داریم بنده خدا رو بالا وفید اینم هم یه نکته بود که گفتم خارج از کتابم حاشیهام گفتم تو کتاب داره گاهی اوقات گرفتگی صدا به دلیل فشار هوا مثلا آلودگی محل سکونت یا محیط زیست این بعضی باز یه مؤمنه هم های خونشون رو ها تا صبح تو اتاق می‌ذارن. آشپزونش اوپنه. در پنجره که نداره. اینجا اتاق بچه هاش تلویزیون نمیکنن یا می‌خوابن اونجا. خودش رو کاناپه مبل است کناسه سلام. این عین خارجه کفش جام تو باشه. بعد این حالا خارجی ال غلطی کرد ما بعد انجام بده. هم نور چش کم میشه آدم با جوراب و کفش بخوابه. هم این آشپزخونه که سرخونه است بعد هموم هم سرخونه داره از گاز پروپانو بوتانو هگزانو اتانو متانو به حروف یونانی است. اتان، متان، پروپ، پروپان، هگزانو انواع گاز های و سخت های و بخارات مسموم ناشی از سخت کردنی و تفتادنی و این چیزا بعد بازدم مردمی که این اتاق بودم زنا بچه دی اکسید کربن بعد گازهای نیم سوخته اینا که مثلا انژکتور انتیکی خرابه، او یکی دیگه این ترمکوبلش خرابه شو سوخت فوسیلی هم ناقصه شعله قرمز میشه. خب گاز منوکسید کربن CO گاز کورسی گاز بیرنگ بیبوه بیمزه مزه پاتله خاموش. اینم که تو مایه زیاد. یا مطمئن همه افراد هم تنگی نفس میگرن هم برونشیت میگرن هم احساس و کسلی و خمودگی و, و خوابالودی میکنن حالا داره خفه میشه قواش هم نمیدونه خوابش میاد میده لهم میده خوابیدن همانو مردن همان این گاز منوکسید کربن میکاشدش حالا داره هم میگن مومنتی این محیط های بسته آپارتمانی یا به صرف اینکه که یک کم پول گاز نده همه درزا هم این دیگه هم فیگور جاهلانه تمام درزای پنجره این رو من لفتم دیدم هم با چشمام دیدم یا حاجها سرف جویه انرژی نا. تمام درزای پنجره اتاقا هم با این چسبای پن بسته صفت کردنه که تی این سالن اتاقا هست و آشپس خونه هود و خونه هم اکثرشون ندار هواکش حموم هم اکثر هم ندار بعضیشون داره بعد مومن هم جارو برقی هم میکشه زبادت معلق در هوا آیروس و گرد و خواه رو پرزن که زیاد شد بعد میگن چرا سینوسام گرفته ملتحب شده چرا چشمام هم میسرده چرا میده درد میگیره چرا دنده چپ سینه قلبم درد میگیره خب ما خواستی چکار کنیم هوای محیط رو کم کردی آلوده هم کردی خب معنیم انواع بیماری هم میگیری پس گاهی به خاطر اینکه، که محیط زیست سالم نیست حالا قزبالا بالاقوز چیه؟ مخواستم اینه بگم این همه مقدمه بود سطل آشقالش هم گوشه آشپسخونش در باز هم هست کیسه پلاستیک آشقالش هم نبسته درش گوشه اتاق خوابش هم یه صد آشقال گشته، فیگور گوشه سالون هم یه سطل آشقال گرشته گوشه آشپسخون هم سطل آشقال گرشته چقدر تورا و آیاتی چیه تو محیط زندگیت آشغال نباشه یکی از چیزهایی که یورس الفقر اینه که آدم خاک روبه آشقالا تو محیط خونه و زندگیش نگرده چقدر روایات داریم شب آشغال تو خونه تون نباشه از تو خونه تون ببریم بیرون زورش میاد از تو آشپزخونه یا گوشه اتاق یا اتاق خواب یا کنار حمام این آشقالا رو جمع کنه بهذا بنده خدا رو های محل که هر شب ساعت دوازه دارن این آشغالا رو میبرن سورش میاد مؤمنان اینا رو جمع کنه برای سر کوچه بذاره که سفور محل بنده خدا ببره شهرداری هم میبره دفع میکنه تو بحثای بازیاب حالا کار ندی خب ببین نه به روایت عمل کرده نه به علم عمل کرده من میگه چرا مریضم مخصر خودتین که رفتارت با خودت و با دیگران از اعضای خانواده منفیه پس گایی آلودگی محل سکونت یا محیط زیست هر کسی همجور را میره این همه سطل زباله کنار خیابونه همجور فرق میکنه چه قلطی هم آدم که نبرای شندلی مندلی کنه بلنگار مزخرف باشه و به ببافه بعد همه جا هم که میره کسیب کن اون از گردشات و مرته اون از جنگل اون از رودخونه اون از کو هرکی میگم همجور فرق میکنه؟ خبابجان خب اون چیزایی که با خودتون آوردین کیسه که داشت وقتی نوش جان کردین غذا و مانند او خوردین خب بعد ها این رو تو همون کیسه جمع کن دیدی برمیگردی خونه تو اول این سطل زباله بنداز لازم نیست این ورینورا فقط پلا کنی هم رودخونه ها رو آلوده کنید هم کنار دریا رو آلوده میکنید نه آلودگی اخلاقی نه آلودگی رفتار منفی نه آلودگی زیست او سیستم‌های سیستم های حیاتی به هم میزنی آب آلوده میکنی ساحل آلوده میکنی جنگل آلوده میکنی این چه جنگل گلستونی هست من دفتم نگاه خجلت که این چه جنگل گلستونی تمام دو طرف جاده هم پر آشقار کنی کنی؟ هیچ موجود زنده جهان رو کسیف نمی‌کنه. این انسان خودمهور خودبین که دارای رفتارهای منفی و اخلاق سیعه از جهان رو به کسافت کشونده. این هم خارجی های بدتر از همه جا بابا جون تحسیصات اتمی داری داری که داری اما آیا باید زباله های اتمی تو تو دریا کنی که تو کشورهای فقیر دفت کنی آدم درست میشه باید عقل باشه نه اینکه جهان رو به آتیش بکشونه به زبال دونی بکشونه اون زباله های سرگردان تو محیط جم ناشی از ماورا عقلتون کجا رفته آدم علم داره تخصص داره عقل هم باشه خوبه چرا زمین و زمان و دریا و جو و هوای پیرامون و همه رو با هم آلودی کردید چرا این کار میکنید چرا خواهتون به خواهتون ظالم میکنید وحر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایدن ناس آشکار شده جلوی چشم دوست و دشمن فساد در روی زمین در دریاها در هوای پیرامون در جنب حمجو هر کی میزه بعد میگن چرا زمین حالت گلخانه ای شد چرا نمی دونم لایه اوزن نازک شد یا سوراخ شد چرا سیل های عظیم و طوفان شدید میاد چرا یخ و برف قطبین قطب شمال و جنوب و یخچال طبیعی آب میشه چرا تو آخر زمان سواحل و از زیر آب فرو میره؟ چرا سونامی میاد متر ارتفاع داره؟ مقصد میخواستی انسان درست باشی ولو هر دین و مذهبی که داری اسلام اینه میگه یه انسان به خودش و دیگران زیان نرسونه ایجاد آلودگی نکنه حفظ محیط زیست حفظ اکوسیستم‌های حیاتی حفظ رفتارهای مثبت. و اخلاق حسنه و عبابت عمومی سالم همه جا باشه چه تو خانواده چه تو جامعه های بزرگتر منطقه و جام همه شما رو به خدا میسپرم و ذکر سرابت بر محمد و آل محمد آمه